سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید وقتتون به امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید در آخر هفته بنزه کافی استراحت کرده باشید و آماده شروع یک هفته دیگه باشید اما قبل از اون در خدمتتون هستم با قسمت دیگه ای از پادکست خودمونی زمانی که ما به مدرسه میریم بچه هستیم و مدرسه میریم اما از مدرسه بعدمون میاد به خاطر حالا مشق و تکلیف و امتحان و اما وقتی بزرگتر میشیم یادمون میاد به دوران دوستان راهنمایی یا دبیرستان، بعضی همون حسرت میخوریم میگیم کاش میتونستیم واقعا برگردیم و دوباره اون دوران رو داشته باشیم بعضی همون هم ممکنه حسرت نخوریم و دوران بدی داشته باشیم ولی خودم شخصا اینجوری هستم که دوران خوبی رو داشتم و اگر شاید میتونستم انتخاب بکنم که دوباره برگردم و یکیشو یکی از دورهای مدرسم و از دوره تکرار بکنم شاید این کار رو میکردم و با اکثر کسایی هم که صحبت کردم فرض کنید پدر مادر خودم یا دوسته دیگهی که داشتم اونا هم بعد از ده سال بیس سال که از مدرسهشون گذشته وقتی که از اون دوران صحبت میکن کل این خاصیت ذهن آدم هست، از نظر روانشناسی هم ثابت شده. حالا آره من اصطلاح دقیقش رو نمیدونم، ولی وقتی در لحظه یک جای کار میکنیم، یک جای درس میخوایم، یک جای زندگی میکنیم، آره، در همون لحظه اگر اون آب و هوای اون شهر بد باشه اگر فرض کن دو تا همکار ناجور داشته باشیم سر کار اگر دو تا دوست ناباف داشته باشیم دو تا دوستی داشته باشیم که خیلی بااً رفیق با معرفت یا مرامی برای ما نبودن توی مدرسه همون موقع ما یه مقدار ناراحت میشیم و میگین وای دوران کی میگذره اما یه مقداری که از اون دوران دور میشیم و فاصله میگیریم ذهن انسانی خاصیت رو داره. که وقتی که ما یاداوری میکنیم اون زمان رو بیشتر خاطرات شیرین یادمون میاد و اون خاطرات تلخ رو به نوعی از ذهن ما پاک میکنه یا رنگش میکنه برای هم وقتی که به گذشته نگاه میکنیم اولین چیزی که فرض از دوران پناهندگی توی ترکیه به ذهنمون میاد از دوران دبیرستان به ذهنمون میاد اون خاطرات خوبش هست خب البته این به نظر من یک سیستم خیلی خوبیه که مغزم ها انسان ها داره وگر نگر میخواستیم فقط اون خاطرات بد رو به یاد بیاریم یا اولین چیزی که به یادمون میاد خاطرات بد باشه فکر میکنم باید همه زندگیمونو صرف قصه خوردن و حسرت خوردن و مرور خاطرات بد میکردیم اما صحبت از مدرسه شد یه چیزی که حالا نمیدونم شما چه نظری در موردش دارید زنگ ورزش هست نظر نظران مختلفه بین حتی پسر و دختر هم در ایران خیلی اختلاف هست بین زنگ ورزش ولی زنگ ورزش برای شما چطور بود آیا یه زنگ جدی و خیلی برنامه ریزی شده بود یا نه با زنگ تفریج فرقی نمیکن یادم اون زمان که من خودم مدرسه می رفتم دو تا زنگ بود که در واقع خیلی جدی گرفته نمی شد. یکی همین زنگ ورزش بود، یکی هم زنگ هنر بود. الان نمیدونم به چه صورت چون واقعا اصلا زنگ هنر دیگه وجود داره، نداره یا زنگ ورزش. چطوری چطوریه شد علت زنگ هنری که من صحبت می کنم مخصوص راهنمایی بود تو دبیرستان دو همچنین چیزی رو نداشتیم، ولی زنگ ورزش چرا توی دبیرستان هم داشتیم؟ اما حالا چی شد که من اصلا به یاد زنگ ورزش افتادم. آخر هفته گذشته در روز یک شنبه بود فکر کنم که من با یکی از همکارام قرار می‌ذاریم و میریم تنیس بازی می‌کنیم. بعضی از روزا از سر کار که تعطیل میشیم و بعضی از روزا هم در روز آخر هفته که کار نداریم با هم قرار می‌ذاریم و میریم تنیس بازی می‌کنیم. داشتین در مورد این که خب حالا این هفته کجا بریم تنیس بازی بکنیم صحبت میکردیم که دوستم گفت که یه مدرسه راهنمایی هم اینجا هست نزدیک شرکت و میتونیم بیایم و فاصلهش هم خوبه یه جای هست که هم با قلم به خونه تو و به خونه من یه, یه فاصله رو داره و نمیخواد هر دو تام راه زیادی رو بریم میتونیم بریم اونجا و توی مدرسه با تعجمی که یک شنبه هم هست و تعطیل اونجا بازی بکنیم گفتم خب خیلی خوبه آیا میتونیم ش... می ما بریم بازی بکنیم یا در داره یا مثلا باید خب مدرسه تعطیل از کسی نیست چطوری ما میتونیم بریم گفت آره مشکلی نداره آ... زمین تنیس بیرون هست و درش هم باز هست و ما میتونیم بریم بازی بکنیم وقتی من رفتم اونجا این مدرسه یه مدرسه راهنمایی بود و مدرسه هم نبود که بگی مدرسه دولتی بود مدرسه خصوصی یا مدرسه بالای شهر هم نبود یه مدرسه خیلی معمولی راهنمایی توی این مدرسه تا زمین تنیس بود یه زمین بسکتبال بود یه زمین بیسبال بود یه زمین برای فوتبال فوتبال آمریکایی و فوتبال خودمون بود که از همون زمین برای, برای بازی لاکراس که یه چیزی مثل چوگان هست که اکسران دخترها بازی میکنن اینجا برای اون بود و من وقتی نگاه میکردم به این امکانات ورزشی و در زمین تنیس, تنیس هم باز بود، یه عده دیگه هم مثل ما آمده بودن که دانش, من دانش آموز نبودن، بزرگ سال بودن، آمده بودن، تنیس بازی میکردن، چند تا از دانشجوهای مدرسه هم بودن که بیرون داشتن ورزش های دیگر رو انجام میدادن. حالا من وقتی داشتم مقایسه میکرد، وقتی که وارد اونجا شدیم و کردم با دوستم صحبتگرم دوستم گفت که براش توزیدم که خب، ایران چطوری بود و مدرسه چطوری بود و ورزش زنگ ورزش چطوری بود گواره دیگه مدرسه امریکایی اینجوریه این اتفاق بازشد که من این مقدار فکر بکنم به زنگ ورزش و این نموش تو هفته گذشته تو ذهنم باشه که چه امکاناتی اینها دارن در اینجا؟ و چه امکاناتی در ایران ماها داشتیم خب علاقت مدارسی هم هست قطعا در ایران مدارس خصوصی زنگای ورزش خیلی عالی و مرتب هم دارم من در مورد استثناءات یا مدارس خصوصی بالای شرکی یه ادهه اقلیت پولار میتونم برن صحبت نمی کنم. در مورد اکثر مدارس و اونی که اکثر مردم مدارس دولتی میتونن برن این مدرسه هم که معرفتی همونطور که گفتم مدرسه خصوصی نبود مدرسه دولتی بود. این شد که من یاد مدرسه و زنگ ورزش افتادم Uh, یه مقدار تحقیق کردن در مورد زنگ ورزش زنگ های ورزش و سرانه ورزش تو ایران بذارید من اینا رو براتون بخونم یه مقداری رو. دیگه بعد خودتون قضاوت بکنید بسنجید که تفاوت ما حالا با کشورهای دیگه با کشورهای پیشرفته. حتی در کچکترین چیزها چیزهایی که به نظر خب زنگ ورزش دیگه یه توپ میدازیم میدویم دنبارشو تموم شد رفت تفاوت ماها چقدر هست؟ یکی از خبرهایی رو که خوندم داخل سایت اسفنان امروز بود که سرپرست سازمان ورزشی شهرداری اصفهان گفته بود سرانه فضای ورزشی هر اسفنانی 33 سانتی متر مربع است. ایشون گفتن که سهم ورزش از, از لحظات زندگی هر شهروند اسفانی در حالت خوشبینانه 85 ثانیه در روز است که زمان بسیار ناچیزی به حساب می آید و سرانه فضای ورزشی هر اسفانی 33 سانتی مربع است یکی دیگه از سایت هایی که نگاه کردم سایت جامعه جامع آنلاین بود که گزارشی رو نوشته بود مبرخ 19 آبان 1394 نسبتا تازه از این گزارش نوشته بود در رابطه با ورزش بانوان حالا همجور که اشاره کردم برای پسرها خو ورزش راحت تر بود مسئله هجاب و روسری و اینجور چیزها رو نداشتن یه توپ فوتبال یه توپ بسکتبال حالا بعضی از مدارس بدمینتون و پیمپونگ هم داشتن و میرفتن بازی میکنن برای دخترها این مقدار سختتر و محدودتر بود. توی این گزارش تیترش این هست جایی سرانه ورزش بانوان در کشور کمتر از یک متر است کمتر از یک متر جایی و تیتر مقاله هم این هست که جایی برای ورزش کردن نیست به گزارش جامع جمع ورزشی هر سال گزارشی بر اساس یک ارزیابی در رابطه با فضای ورزش بانوان ارائه می که در برگیرنده خوبی برای که در برگیرنده آمار خوبی برای ورزش بانوان نیست. در, در ادامه مقاله اشاره شده که در واقع اختصاص زیرساخت‌های ورزشی به بانوان است که کمتر می افتد و اصلا در وقتی از استان‌ها حتی در حد یک سانتیمتر هم پیشرفت ندارد طبق آخری آمارها سرانه فضای ورزشی در تهران و برای بانوان به کمتر از یک متر می رسد به طور دقیقتر 82 سانتیمتر اما در 82 سانتیمتر چه می توان کرد؟ برساس اساس های جهانی حداقل حدود دو متر برای ورزش هایی که نیازمند حرکت مداوم است نیاز است این یه حالا به صورت کلی بود و یه گزارش دیگه هم خوندم که خیلی جالب بود نوشته بود که ایرانی ها ترجیح میدن که آره این گزارش رو سایت الف منتشر کرده بود و خیلی جالب نوشته بود ایرانیان ورزش نکردن در جوانی را به مریض بودن در میان سالی و پیری ترجیح میدن در هفته گذشته معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان در یک نشست عمومی خبر را عنوان کرد که آنطور که شاهسته بود به آن پرداخته نشد طبق گفته ایوی اعلام شد بیش از 80 درصد ایرانیان روزانه ورزش نمی کنن. این گزارش هم سهشنبه 9 تیر 94 منتشر شده خب حالا بحث ورزش و اصلا سرانه ورزش که میشه یه آمای را من بگم که در آمریکا هم حالا من نمیخوام بگم امریکا کعبه موعوده و اینجا همه چیز عالی و هیچ مشکلی هم نداره. از نظر سرانه و از چی امریکا هم همچین مشکلی رو به صورت کلی داره ولی در سطح مدارس خیلی بهتر هست نسبت به ایران. و اینکه یه سری باشگاه هست که مثلا این باشگاه ها مخصوص خانواده است و نه که مخ... یعنی منظور من اینه که محیط خانوادگی داره و هزینه اون باشگاه هم طوری تعیین شده که اکثر خانواده ها از عهده پرداختون هزینه بر میان و در واقع این این امکان در اختیارشون هست که برن و ورزش بکنن و یک مجتمع ورزشی خیلی بزرگی هست که همه چیز داره از بدنسازی داره تا شنا و والیبال و استخر و هر چیزی که شما فکرشو بکنید و نیاز داشته باشید برای سلامتتون و ورزششون اونجا در اختیار شما هست. یه مسئله دیگه هم که هست ورزش اینجا در مدارس یک خوبی داره و کسانی که در راهنمایی و دبیرستان ورزش میکنن میتونن بورسیه های تحصیلی برای دانشگاه بگیرن چیزی که تا اونجایی که من میدونم تو ایران وجود نداره لیگ های منظم ورزشی حتی در راهنمایی و دبیرستان دارن مثلا لیگ منظم فوتبال آمریکایی دارن لیگ منظم فوتبال خودمون برای پسرها و دخترها دارن لاکراس برای دخترها لیگ منظم دارن بیسبال بسکتبال ورزش های اصلی رو لیگ منظم داره حتی در دانشگاه خود ما تیم شطرنج دانش... تیم دانشکاه داشتیم یعنی کسانی که شطرنج باز بودن از دبیرستان یا از بیرون حالا شترنج بازهای خوبی بودن بورسیه می گرفتن. به این طریق که شهریه دانشکاهشون در واقع برای اینا مجانی می شد و به صورت مجانی درسشون می خوندن و به عنوان یکی از اعضای تیم شطرنج دانشکاه در مسابقات هم شرکت می خب و اینها حتی امکان حرفه‌ای شدن براشون وجود میاد. برای مثال فرض کنید مایکل جردن که یک بسکتبالیست افسانه‌ای و یکی از قهرمانان بسکتبال آمریکا هست چطوری شناخته شد و به صورت حرفه‌ای به مایکل جردن حرفه‌ای تبدیل شد؟ از توی همین مدارس. یعنی در واقع از کالج که بود بسکتبال بازی می کرد این انتخاب شد و به NBA راه پیدا کرد و مایکل جردن. به وجود اومد و ماکل جوردن شد که همه ماها میشناسیم و این اتفاق خیلی کمتر در مدارس ایران میفته و شاید هم اصلا نیفته برای یه عده هم که استعداد دارن حالا جدا از این که حالا کمبود امکانات رو که برای همه هست اگر بذاریم کنار یه عده هم که با کمبود امکانات سخت تلاش میکنن تا به یه جایی برسند اوناش رو داشتین که من قبلا مصاحبه کردم جدا کار به هایی که به بارها به تیم ملی دعوت شده و حقش تیم ملی بوده به خاطر که حالا مسلمون نبوده و با های بوده مورد تبعیض قرار گرفته. امیدوارم که شنیدن این برنامه در رابطه با ورزش شما رو تحریک کرده باشه و انان برید بیرون راه بدارید قدمی بزنید اگه هوا خوبه مناسبه میتونید برید بیرون حتما این رو بکنید اگر باشگاه ثبت نام کردید تمبلیتون شده امروز نرفتید حتما دارید و از این امکاناتی که هست لذت ببرید با توجه این که هوا الان بهاری شده و هوا هوای خوبی هست شاید حتما الزامی وجود نداشته باشه که پول بدید و باشکاه برید میتونید راحت برید بیرون قدم بزنید بدوید یک ساعت در روز هم قدم زدن خیلی میتونه به سلامت انسان کمک بکنه امیدوارم که بعد از شنیدن این قسمت حوث کرده باشید و دلتون کشیده باشه که برید بیرون رو یک قدمی بزنید و یک مقداری ورزش بکنید خب احتمالا زمانی که شما دارید این پادکست رو گوش میدید من هم در یک مسابقه دو مشغول عکاسی هستم برای من شما رو تحریک میکنم که برید ورزش بکنید قدم بزنید خودم میرم مسابقه دو وای میستم نگاه میکنم و عکس میگیرم نه یک مسابقه دوی هست که به عنوان والنتیر من دارم میرم اونجا و براشون قرار هست عکاسی بکنم از این مسابقه در چند شهر آمریکا برگزار میشه اونی که توی شهر ما هستم من دارم میرم و احتمال شما انانی که دارین این من اونجا دارم اکاسی میکنم و عکساش رو هم بعدا توی فیسبوک سریشو میذارم یه سریش هم که در سایت خودشون قطعا منتشر میشه خب تا هفته آینده موضوع دیگه و برنامه دیگه امیدوارم شاد و تندرست باشید خدایا رو نگهدارتون